در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش حافظ قراب کش شد و مفتی پیال نوش صوفیز کنج سومه با پای خم نشست تا دید محتسب که سبو میکشد به دوش احوال شیخ و غازی و شرب الیهودشان کردم سوال صبح زم از پیر می فروش گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش ساقی بهار میرسد و وجه می نمان فکری بکن که خون دل آمد زغم به جوش عشقست و مفلسی و جوانی و نوبهار عذرم پذیر و جرم به زیل کرم بپوش تا چند شم زبان آوری کنی پروانه مراد رسید ای محب خموش ای پاد شاه صورت و معنا که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش چندان بمان که خرقه عزرت کند قبول بخت جوانت از فلک پیر جندپوش